زبلخان و میمون فوزود رو همه میشناسه. این انیمیشن لهستانی داستان یک شکارچی بود که سفارش برای شکار حیوانات میگرفت. ولی همیشه در این کار ناموفق بود. نام اصلی این کارتون پامپالینی شکارچی حیوانات بود که در ایران با نام زبلخان سالها پیش از شبکه اول تلویزیون ایران پخش میشد. نه من شکارچی چستم؟ قابل اعتمادمون حشر بپرد همه زبل خان میشاشتن همیشه پر هیجان بدون آرام و قرار زبلخواان اینجا زبلخواان اونجا زبلخواان همه جا زبلخواان فقط کاپی دسته شد دراز کنه تا یه حیول بخشی رو بگیره او آای کار گردد این شیرری اینجا چیکار میکنه ملوان زبل همونطور که از اسمش پیداست ملوانی بود که همیشه یه پیپ گوشه لبش داشت مردی که آشق اسفناج بود و با خوردن اون نیروی عجیبی به دست می آورد و کارهای عجیب و غریبی انجام می داد. ملوان زبل ما آشق دختر دراز و کجوکولهی بود و همیشه با یک ملوان تنومند مبارزه می کرد. خرس قهرمان ملقب به قویترین و مهربانترین خرس دنیا شخصیت اصلی داستانی به همین نام بود که وقتی از اصل مخصوص میخورد نیروی فوقلادهی میگرفت. نقش اول کارتون معاون کلانتر یه سگ بود. معاون محبوب باید دزدیها و خلاف کوچیکی که شخصیت های مرتکب می رو پیگیری می کرد. مثل تخم مرغ های ماکسی. اتفاق این کارتون با اپیزودهای های پنج یا شش دقیقه ای خیلی جالب و خنده بود. فکر می این خاکینه دیگه باید درست بجا باشه ماستی بتر دستبر خاموش کنیم ببینم ماون کلانتر شما هستین فکر میکنین این چیه داددم رووسنم یه مایتابه پنج کامیون من شب شده احتیاج به معافظت داره میخوام شما مواظش باششین تا من برگردم اصلا نگران نباش تا من ازم کامیون تو کاملا در امانه مگه دیگه نبت به دوکتتی کامیون من خور پای مامان مگلنی نیاز ماوه من و برد به این که دیگه خواهیدی نمیخواییم منم به این نسکی رسیدم که شما پای ماما مگلونی هم نمیخواد ایهی دیره خیلی خواب را بیوف بریم ماوه یعنی ما رو آره با خاطر فکردن به پای دیمتونه آره آره ولی نمیتونم ما آره رو اینجا نگرداره ببین یه سنجوخ سر خب از کلیم همه میتونم اشتفاده کنم اینطور دوست ندارم وقتی من بیرم کمش بیرم از این خواهی ها چند بیشه حواست جمع کن تا من برگردم حتما مطمئن باش من یکی حواستم کاملا جمعه سوزن میخورم با تمام قدرتم از محافظت بکنم من که هز افراد علاقه من میکاری خوشم یا تو کی با؟ چون چون من گرد اینجا بد پای دوست خیلی قابل، مجبورم خودم زندگیت بکنم، مازدی؟ من پس نیمم، تو سمیانه خالی کنبن؟ ای؟ ای؟ ای؟ ای؟ ای؟, ای, ای, ای, ای؟ خداید نیکو شخصیت اصلی کارتون نیکو نیکو ماجراجو و کنچکاف بود اما گاهی بیش از حد بیگودار به آب میزد نیک دوست نیکو کمی ترسو و حسود بود. 14 ملخ عاقلی بود و داستان رو روایت میکرد. موشی روشن فکر بود و همیشه در میان سایر حشرات مورد احترام واقع میشد. دوستی نزدیک او با نیکو اغلب حسادت نیک رو برانگیخته کرد. آقای مگس اغلب حشرات دیگرو رو در مورد شیوه زندگی و رفتار انسانها مطلع میکرد در جزیره متروک به پیشواز دومین بهار رفتن دانوان به همراه پسر دیگه که به محبوبیت برایان حسادت می کردن مستقلا به ساحل شرقی رفتن دو شب بعد از رفتار اونا اتفاق غیر منتظری افتاد اون زن کی بود؟ چرا و چطور به جزیره متروک اومده بود؟ در موقع برایان به تنهایی برای پیدا کردن دانوان و دوستاش حرکت کرد. برایان که به شدت احساس مسئولیت کرد حاضر نبود دیگران را به این مأموریت بفرسته. برگردیم گردیم از امروز به بعد بینون رفتن قداغند میشه. از اسلحه هم استفاده نکنیم. اگه صدای گلوله رو بشنون محل ما رو پیدا می‌کنن. ببین مگه؟ آیه می‌خوای قضا درست کنی فقط شوا آتش رو خاموش. چون ممکنه دود آتش رو ببینن. اتفاق میشه آقای گاردون. آتیشی حتما هستن، نکنه باشن. چوبین موجودی که از سیاره دیگه اومده بود، به خاطر وجود دشمنش برونکای خبیس و نجات مادر مهربانش از چنگال او، به دختر مهربونی میاد که همراه پدر بزرگش زندگی می‌کرد. در کنار برونکای دماغ بادام‌جونی و های بالدار آهنی یک چشم و جکو جونورهای عجیب و غریبی که به هر کار عجیبی توانا بودن رولی و پدر بزرگش رو هم می دیدیم که رابطه عاطفی نسبتاً عمیقی با چوبین داشتن همینطور پروانه که یار و قمخار تنهایی و افسردگی چوبین بود و البته لجوازی کودکانه بینشون گهگاه قصه تازه‌ای می شود. افسون بر غمهای جانکاه چوبین خرس و خرگوش و گور هم به عنوان دوستان کمی تا قسمتی ابله چوبین حضور داشتند. به هم خوردن ها و منفجر شدن های اون خفش های احمق هنوز یادمون مونده. و خنده های شیطانی برونکا در پس چشمان نفرت انگیزش و صدای مهربان مریم شیرزاد برای دوبله شخصیت رولی و دوبله شیطانتامیز فریبا شاهین مقدم برای چوبین و جغدی که از درخت پرد میشد پایین و یه خبر بد رو اعلام می کرد. و پسر غورباغه که همیشه توی دهن پدرش بود این کارتون؟ یکی از کارتون های خاطر انگیز و زیبای دهنشات با کوورنا مین گر و نانی خدمتکاران قلعه هزار اردک تصمیم میگیرند تگه مراسمی کنت داکولا رو احیا کنند. اما با اشتباه نانی به جای مجون گیاهان وحشی سس گوجه فرنگی توی محلول ریخته میشه و نتیجه امر بازگشت داکه. با یک اختلال غیرعادی، ارباب داک تبدیل به یک دراکولای گیاه میشه. بالای هزار اردک فرهاس که محل زندگی خاندان های عجیب و غریب بوده. در افسانه ها آمده که برای دیدن این موجودات باید به هنگام بارش باران و در میان رعد و برق به سوی قلعه بزرگی که در انتهای صخرهی بلند قرار دارد حرکت کنند. در صورتی که شمس کمی با ما همراه باشه، حتما موفق به دیدنشون میشیم. پرنده مشهوری مشوری داره تا از راههای جدید برای دیدن اونها استفاده کنه. من ترتیبشو می کسی باور نخواهد کرد که بدین این حقیق پرنده که سالها به خواب خود رفته بودند بیدار شوند. از راز قلعه هزار اردک تنها اهالی دهکدین که در اون نزدیکی زندگی میکنن باخبرند و حالا این قلعه خانه عجیبترین و تنهاترین ترین بازمانده بزرگ یعنی داکه بزرگ دو عروسک به نامهای چاق و لاغر با یه ماشین جیان گلگلی از طرف رئیس بزرگ که دیده نمیشه معموریت دارند برنامه های جشن دهه فد رو به هم بزنند. چاق و لاغر دست و پاچلوفتی و بی ارزه که هیچ وقت موفق به انجام دستورات رئیس بزرگ نمیشدن و همیشه اونو عصبانی میکرد بال بالتازا موجود کوچیک کارتونی بود که برای هر مشکلی یک راه حل ساده داشت اول کمی راه می رفت و فکر می کرد بعد از کشف راه حل هر مشکل با خوشحالی بالا و پایین می پرید و به سراغ دستگاه جادویی خودش می رفت از دستگاه عظیم خودش رو پایین می کشید و بعد از فعل و انفعال عجیب و غریب و باز و بسته شدن چتری کوچیک بالای دستگاه همه چیز آروم می پروفسور به سراغ شیر دستگاه می رفت و سه قطعه جادویی رو داخل یک لوله آزمایشگاه می ریخت کارتون برتا ماشین همکاره ماجرای یک ماشین بزرگ سازنده وسایل بود که در هر قسمت وسایلی عجیب تولید می در این کارگاه چندین نفر کار می و اسباب بازی و وسایلی که برتا تولید می کرد رو بندی می mind of own and I think that's very likely, likely, oh, Bertha, lovely Bertha, sometimes I think you're a dream, oh, when we work out what you have to do, you can always turn the goods out, always turn the goods out, we can depend upon you. اسکیپی نام کانگوروی باهوشی بود که با دوستان انسان خودش سانی هاموند و متهاموند در پارک جنگلی زندگی میکردن. در هر قسمت از این برنامه اونا به مبارزه با خرابکاران پارک جنگلی و می میپرداختن و اسکیپی در این راه نقش امدهی داشت. که همیشه دنبال خوردن جری موش بود ولی هیچ وقت موفق نشد. بچه که بودیم از میگ میگ بدمون میومد دوست داشتیم که بار بارم شده دست این گریه که اسمش کایوت بود به میگ میگ که اسمش رودرانر بود برسه ببینیم چطوری میشه و این رو دلمون موند تا الان یوگی خرس مهربونی بود که به همراه دوستاش سفرهای زیادی انجام میداد و اتفاقات جالبی رو رقم میزد مگمگ و دوستان زبه مربوط به جزیره‌ای پر از پرنده بود. مگمگ شخصیت اصلی این داستان یک اردک بود. هر بار ماجراهای تازه‌ای در این جزیره رخ می‌داد. و دوستان زبل کمتر کسی پیدا میشه که اسم پرنگ صورتی رو نشنیده باشه این کارتون زیبا و خنددار جز به کارتون هایی که هیچ وقت از ذهنمون نمیره و خیلی ها باش خاطره دارن بعد از گذشت سالها وقتی چشممون به این کارتون میخوره باز مثل دوران بچگی مشتاقانه میشینیم و این کارتون رو تماشا میکنیم و برامون تازگی خاصی داره پلنگ صورتی اجرای ای از امیال و آرزوهای فروخفته و برآورده نشده ما آدم بزرگ ها منطق حاکم بر روابط صورتی با آدمهای دور برش یک منطق کاریکاتوریه نه یک منطقه کارتونیم ما با پلنگ صورتی می دوییم. توسط اتومبیل‌های در حال حرکت زیر گرفته می‌شیم از بالای پشت بوم یک آسمان خراش به پایین سقوط می‌کنیم از انفجار محی به یک بمب در دو قدمیمون شوکه می‌شیم ویران می‌شیم تغییر شکل می‌دیم اما دوباره قد راست می‌کنیم ولو با پیکری زخمی خرامان خرامان راه رو ادامه می‌دیم این خود خود زندگیه در میان این کارتون های بسیار زیبا و خاطر انگیز خاری آبی رنگ بود که به دنبال مورچه قرمز رنگ و در پی شکار اون خودش رو به آب و آتیش میزد و از انواع امکانات استفاده میکرد اما هیچ وقت موفق نمی‌شد. آه آوازوی رو پیدا موزو بذارم و فرار کنم بگی بابا هی فرار فایده نداره تو دیگه عمرت به آخر رسیده اینو دوستنه برد میکم رفتی برای گرفتنه من باید خیلی سگ دو بدنی سگ سگ سگ گفتم که دیگه فرار ای نداره تا دیگه با آخر خط بسید ندیا خب زود برای جنگ تموتن آواده شو و خودم برای دوازه کنا بیا آترستم رفت تو درخ با با ترستم رو خایب میشیم آره راست میگفت زر به شستی داشت آداب بفرمایید اینجا کنترل حشرات موزی بانگو گفتین با موشا مشکل دارین یکی رو همین امروز میفرسم اونجا نشونی تو چیه؟ چرا برای 402 بانگو نوشتم؟ بخشکرا با بله حتما میفرستمش خاطرتو جستم چقدر آشناز این که نشونی منه پیدات ما همین چه مشکل داریم برای پیدا کردن مورچه اما خب میدونین چون من خیلی باهوشم حتما میتونم مورچه کار شکار بکنم خیلی خب هو بهتره که یه تلفن پیدا بکنم و زنگ بزنم و بگم کسی رو نفرستم خب شمارش چی بود هم باگو و تو خب حالا زنگ میزنم تلفونه می‌کار خودشه الو مرکز کنترل لاشرات موزی بنگو سلام چطوری عزیزم ما خودمون مورچار از بین بردیم کسی رو نفرست خب حالا بهتره برم سراغ غذا یادی یه شکم لا لا لا لا بریم سراغ قضا خب بخیر مرچف فکر کردی نمیدونم کجایی اهان اومدی اینجا شکم چربونی بکنی؟ ال خراب حالا نوبت منه که تو رو بخورم تا این ضیافت برای من برپا شده. یک تاموجری تازه قرار بود گوریل لنگوری یک تاموجری جدید باشه. تاموجری که این بار برخلاف سنت دیرینشون با هم دوست بودن و جونشون رو برای هم میدادند. تام شده بود یک گوریل 13 متری خجالتی که آشق انگور و موز بود. جری هم یک ماشین ون خریده بود و اسمش شده بود بیگلی بیگلی. این وسط یک تغییر هویت کوچولو هم اتفاق افتاده بود. جری از موش بودن استفاده داده بود و شده بود سگ. یک سگ سفید دوست داشتنی که اسقر افزلی به جاش حرف میزد. همون که یک عمر به جای وودی آلن حرف زد و ما رو عاشق صدای خودش کرد. یه بچی؟ هی! نگاه کنید چیزی توشه. یه یه! این چیه بیگلی؟ میشه نقشه دو جای دریایی؟ نگاه کن؟ جاید؟ آها! آه آه آدم باشه انگری. حالا دوگه اینجا دو جای دریایی نیست. باشه حالم انگریه انگریه. اون چیه؟ بزین که تقریمه. نه. آدم زمینیه. نه کن. یه یه نقشه جنجه. ها باید مال من بشه بهتره دوباره تکشار <بر> کنم <Welkin pap> فقط کپی چپه راه نمایی نقشه عمل کنیم تو گنج مال ما بکیم گنج آخ جیان انگری انگری و من کافی اونها را تقییم کنم تا گنج پاهمم بشه اجالتون انگوری بایی تو آقای نرفته بریشیم اونجا باشه انگوری چی شد انگوری؟ بازه میدونم میدونم بگلی بگلی از ماشین پیاده میشد و انگوری از روی سخت میامد پایین سخفی که هیچ وقت به خاطر وزن مثلا زیاد این گوریل سیزده متری حتی یک سانت هم کج و نشد همون موقع بود که با یک آدم غریبه می شدن و خودشون رو بیگلی بیگلی و انگوری معرفی می و طرف با تعجب می گفت اما تو که یه نفری؟ و اون وقت بود که طرف تازه متوجه انگوری نازنین می شد وای؟ این که گوریل گنده است مردم بیچاره نمی که این گوریل سیزده متری بی آزارتر از هر آدم یک متری دیگه ایه. آزارش حتی به فیل هم نمی رسه چه برسه به آدم بعدم نمیاده شنایه بکنم هنگ گوریل ایلی تو پرمگیشه بندشه من آه تو فقط همین میگی بگی ما گیر کردم انگار خب یه جای کاری بکنیم جوش دایی باشه چه بگلیم دی hey, علیه ام دیگه جنوی باید همین پوشماشت باشه او او او او و يا قبول كنيم خدای گولی بیشتر از خدای که ازش این نظر شب کی خدای بندگان قدرت انگری قدرت انگری, انگری. انگری. و بولک دو شخصیت محبوب و دوست داشتنی دنیای انیمیشن بودند که پیام های اخلاقی رو همراه با نشوندن شکوفه لبخند روی لبامون به ما منتقل می‌کردند That's all, bullshit. Me,